به خانه رسیدند. اسماعیل سطر را توی سایه دالان گذاشت و به حیات برگشت. آنا با آفتاب مشغول آبپاشی بود. رد خیص آب لوله باری آفتابه به صورت حلقه ها و هلال‌های به هم پیوسته روی زمین می‌ماند و بوی مطبوع خاک مرطوب می‌داد. خورشید در اولین روز سال خودش را از شیب آسمان بالا کشیده بود و گرمایش را روی آبادی می‌ریخت. اسماعیل به دیوار خانه تکیه داد. یک پایش را بلند کرد و کفان را به سینه دیوار چسباند. آنا با پیاله چینی پر از آب آمد. بیا بخور آب چشم است. خودت آوردی. تشنم نیست. بخور دلتو خونک می کنه. پیاله را گرفت. سفید بود با نقوش اسلیمی آبی خوش رنگ که در تابش نور خورشید می درخشید. آب چشم خونک و خوشتهم بود. پیاله خالی را به آنا برگرداند و گفت. کاری نیست من بکنم. بیکاری حوصله‌ام رو سر می‌داره. آنومکسی کرد و گفت: حالا که حسرت سر رفته بریم رودخونه. از اونجا هم به دریاچه سر بزنیم. شما خودتون رو خسته نکنین، قدم زنم میرم و برمیگردم، به کاراتون برسین. نه، منم میخوام دریاچه رو ببینم. این وقت سال تماشایی میشه. یه دقیقه صبر کن الان میام. پیش از آن که وارد خانه بشود برگشت. خوبه که یادم افتاد، یه حرفی رو میخواستم بگم اما فراموش میکردم. اسمایل جون تنهایی از ده بیرون نرو فهمیدی؟ چرا آنها خبریه؟ امسل این طرف گرگ زیاد شده میگن خیلی هم آدم خارن. با حیونا کاری ندارن دنبال آدم میگردن قربونست برن موازه خودت باش تنهایی جایی نرو زیر لب گفت باش اما حوازش رفت پیش گله گرگ ها آن شب برفی و کولاکی و رانندهی که نوهای حضرت عبال فضل میخوند. همه یان ماجرا مثل یک خواب وحشتناک بود آن از خانه بیرون آمد جلیقه یه بنفش خوش پوشیده بود که دکمه های تلایی داشت زیرا آن پیراهن بلند و سفید تنش بود و گالشی تازه بپادشت بخچه یه کوچکی هم زیر بغل زده بود در خانه را قفل کرد با خوشحالی به او نزدیک شد و گفت بریم حالا اسماعیل باز هم اعتراض کرد شما به خاطر من کارتونو گذاشتین؟ بیا بریم کار همیشه حس فرار نمیکنه اما اسماعیل عزیزم همیشه پیش من نیست سالیگه یادت میفته که روز اول سال با مادر رفتیم کنار رودخونه به دریاچه سر زدیم هی hey. شاید دیگه من نباشم اون وقت اسماعیل دست انداخت روی شانه آنا و خم شد سر او را بوسید و گفت صد بهار دیگه ایشالله زنده باشی و من بیام اینجا و با هم بریم گردش پیش از اینکه از پرچین خانه بیرون داروند به یک چوب اشاره کرد اونو بردار یه وقت دیدی به درد خورد. به خاطر سگایی گلهان کار دیگه سگ گرگ حالا هرچی آدم نباید دستش خالی باشه. اسماعیل چوب دستی را برداشت و پشت سر آنا باریک راهی را که از میان شبدارها میگذشت در پیش گرفت. راه نرم و راحت بود. پوششی از علوفه خشک داشت. وقتی به ماع می رسید پیچ ملایمی می میخورد و به مسیرش ادامه میداد. تا چشم کار می کرد، درخت بید بود و چنار و سنوبر که شاخه های هنوز لخت و بیبرگ بودند و جوانه های اننابی روی آنها دیده میشد. ته چوب دستی را به زمین میزد و پشت سر آنها راه میرفت. به درختها نگاه میکرد و چند ماه بعد را تصور میکرد که همه آنها سبز و پوشیده از برگ تازه میشدند. گاهی خم میشد و علفی را از زمین میکند و اسمان آن را هم می گفت که مثلا برای چه چیزی خوب است؟ یا اگر با کدام غذا قاطی شود آن را خوشمزه میکند. بعضی از آنها را هم به اسماعیل میداد و میگفت: بو کن ببین چه عطری داره؟ میگرفت و بو میکرد و با خودش قرار میگذاشت آن بوی خوش را به خاطر بسپارد و هر وقت آن را استشمام کرد به یاد روز اول سال آنها و کور راه باریکی بیافتاد آن دو را به رودخانه میبرد. رود دیده نمیشد اما حیاهویش از میان درختها شنیده میشد. هیچ صدایی در آنجا به بلندی صدای رود نبود نه صدای باد نه صدای گنجشک ها و نه حتی صدای غارغار های سیاه که ریسه شده بودند روی شاخههای بلند چنارها رودگویی تهدید میکرد تا کسی نزدیکش نشود شاید هم دعوت میکرد بیایند و خشم و خروش او را ببینند اسماعیل از لابهلای درختها ناگهان پیچ و تاب را دید گلآلود بود و سیلاس از روی تخت سنگ ها و تنه افتاده درختها خیز بر و کف می‌کرد و می و میرفت. هر دو روی ساحل مرتفع رود ایستادند و به امواج خشبین آن چشم دوختند. اسمایید چوب دستیش را به پایین دراز کرد که ناگهان موج خیز برداشت و ضربه ای به آن زد و طرف خود کشید. زیاد نزدیکش نشو. یه دفعه زیر پا رو خالی میکنه و آدم رو میبره میندازه تو دریاچه. اسماعیل کمی کنار کشید و با صدای بلندی که مادر بزرگ بشنود پرسید حالا این آب از کجا میاد؟ آنا بالا دست را نشان داد و به انبوه ابرهای تیره و می اشاره کرد که روی یال و سینه سبلان نشسته بودند و گفت ببین از اونجا بالای اون کوه خیلی خطرناکه روز روشن آفتابی سیل مثل اژدها میاد و هرچی آدم و حیوونه با خودش میبره و میرزه تو دریاچه بیشتر هم زنا و دخترها رو میبره حالا چرا اونا برای اینکه با خیال راحت کنار رودخونه میشینن و مشغول شستن ظرف و لباس میشن یه دفعه سر صدا میشنوند. تا سر بلند میکنن که ببینن چه خبر شده سیخ خودشو مثل گورگ رسونده بالا سرشون و انداخته تو رودخونه اسماعیل به بالا دست چشم دوخت به میان درختها و بوتههای بلند گزنه انتظار داشت گله گورگ ها را لا به ببیند که کنار سیلاب در هم میلولند زمین را بو میکنند و زوزه میکشند و صدایشان با هیاهوی رود در هم میآمیزد میزد. بیا بریم خدا میدونه این رودخونه چند ساله که این راه رو میره. بریم با رود همراه شدند و پایین رفتند اسمایل کنار سیلاب بود گاهی موجی می جهید و قطرهای آب را روی شلوارش می پاشید کم کم از ده دور شدند خانه های بنفش در پشت تنه درخت ها ماندند و دیده نشدند با پای آنا نزدیک ظهر به ساحل دریاچه رسیدند نیزار متراکمی مانند دیوار بلند آنجا را پوشانده بود و مانع دیده شدن دریاچه میشد باد بوی جگن و جلبک را از آن سو میآورد بعضی جاها دریاچه از میان نیزار مثل پری خفته و خاموشی دیده میشد آبی بود با موجهای ریز بازیگوش که برجستگی وسط آن مثل پوستهٔ تخم مرغ برآمده مینمود امواج دریاچه در پرتو آفتاب نیم روز میدرخشید. اسمایل با شگفتی به آن برکه عظیم و زیبا نگاه میکرد. رنگ های آبی و فیوزهای و سبز گاهی در هم میانیختند و ترکیبی شگفت به دریاچه میدادند. نزدیک شدند. باد میان نیزار افتاده بود. ساقه های سبز و بلند نیها همراه هم مانند جماعتی نمازگذار، کمانه می می‌کردند و به رکوع میرفتند و بر می و می ایستادند و صدای هیس هیس رازآلود و پردامنه ای آنها همه کس و همه چیز را به سکوت فرا میخواند. حتی سیلاب را و دریاچو و امواج بیقرار آن را در همان حال صدای حیاهویی از آسمان شنیده شد دسته ای پرنده بزرگ در حال فرود آمدن در ساحل بودند اندام کشیده و نوک دراز و پاهای بلندی داشتند اسماعیل نشانشان داد آنا اونجا رو آره میبینم دورناها هستن اشک دور چشمهایش حلقه زد همیشه چشم به راهشون بودم که چه وقت میان و چه وقت میرن حالا هم همینطورم بچه که بودم دلم میخواست توی یکی از این اومدنها و رفتناشون منو هم با خودشون ببرم حالا هم حالا هم اون وقتا یاد مرگ نمی افتادم. فکر میکردم تا دنیا هست منم هستم اما حالا نمیدونم به پاییز میرسم که کوچه دورنها رو ببینم یا نه اسمایل خندید میبینی مادر بزرگ میبینی انشالله این دورنها که هیچ نوههاشون رو هم میبینی حالا میبینی آنا هم خندید به ساحل نزدیک شده بودند چند اردک و غاز وحشی روی دریاچه شناور بودند و ردی موقت از خود بر جای میگذاشتند از میان نیزار گذشتند و به زل جنوبی دریاچه رسیدند زمین آنجا مسطح بود با شیب ملایم و چند چشمه کوچک آب که از زمین در می آمد و با اجل میریخت توی دریاچه. روی تخت سنگ صافی نشستند. از آنجا ساحل مقابل و نیزارهای اطراف دیده می شود. سنگ گرمای ملایمی داشت که از آفتاب گرفته بود. پاهایشان را به سمت ساحل دراز کردند. دریاچه در آن قسمت صاف و آبان زلال بود. قلب سنگ ها و جلبک های سبز و قهوه درونان دیده می شود. ماهیهای های گاهی به سطح آب میآدند و به هوا میجهی یا ناگهان به پشت میچرخیدند و شکم سفیدشان با هاشیه های رنگین کمانی زیر نور خورشید به گونه خیال انگیزی میدرخشید آنا بخچه را روی سنگ گذاشت و گر را باز کرد. توی بخچه چند نان لواش بود با یک مشت پنیر خیک و کمی کرد. آنا خیلی زود سفررش را آماده کرد و گفت: بخور، گرسنم نیست فقط تشنمه. پاشو را از آب اون چشمه بخور. احسان امام حسینه مثل عشق چشمه. بلند شد. چشمه کمی بالاتر بود. آبش پیش از ان که به دریاچه بریزد توی حوضچه کوچکی جمع می شد و بعد به سمت دریاچه می خزید. دکنده زانویش را دو سوی چشمه زمین زد و کف هر دو دستش را اطراف آن گذاشت و روی سر و گردن خم شد و لبهایش را چسباند به آب و شروع برنوشیدن کرد. نکه دماغ و شد. سیر خرد و نفس تازه کرد و با فشار روی کف دو دست کندهٔ زانوهایش را از زمین کند و ایستاد نسیم خنکی بر صورتش دست کشید و رد شد به طرف آنا رفت عجب آبی بود از اون كوهها میاد به سمتی که آنا اشاره کرده بود چشم دوخت رشته کوهی بود نه چندان بلند اما پوشیده از برف آنا پنیر و کره را با هم مخلوط کرده بود بیا بشین بخور، آفتاب کره رو آب میکنه نشست همان جا روی سنگ کنار آن. تکه ای از لواش را برید و با پنی رو کره لقمهی درست کرد و خورد لذیذ بود با اشتها مشغول شد آن لقمه کوچکی میگرفت و آرام و آهسته میجوید بینشان سکوت بود اسمایلان را شکست فکر نمی کردم اینقدر بچسبه نوش جون به خاطر آب چشمه است. فقط آب چشمه نیست هوای تمیز در رم هست، رود هم هست، دریاچه هم هست و از همه مهمتر کرو و پنیر آناس که اینطوری میچسبه. آنا خندید و گفت، دمیرم الهی، چیز دیگه نداشتم بیارم بخوری. خیلی هم است وقتی خوردند، آنا خوردریز نانها را تکان توی دریاچه. چند لحظه بعد سر و کله ماهی های کوچک ساکن ساحل پیدایشان شد، به سرعت تاهمنه ی سفره را بلعیدند دوباره به موقع دریاچه لغزیدند به نظر میرسید ظهر شده اما اسمایل شک داشت از آنها پرسید او با خنده گفت اینکه کاری نداره چوب دستید رو فرو کن توی زمین تا بگم زهر شده یا نشده. همین کار را کرد آنها گفت نگاه کن سایه هنوز به پای چوب نچسبیده یعنی چند دقیقه دیگه به مونده خیلی خوب تا ما وضو بگیریم آماده بشیم سایه می چسبه به چوب آهسته به سمت ساحل سرازیر شد. نیمتنهش را در کفش جوراب هایش را کند و مشغول وزو گرفتن شد. امواج جلبک های بلند زیر آب را شانه میزدند و به رشتهها و رشمه های آنها پیچ و تاب میدادند. ماهیهای کوچک لابلای جلبک دیده می شدند. چند خرچنگ قهوهی و لاک پشت هم پشت سنگ ها نزدیک جلبک ها بودند. با حوصله وضو گرفت. کفش و جوراب را پوشید و نیمتنه را برداشت و پیش آنها برگشت و به اطراف نگاه کرد. هم به افقهای بلند و هم به قلعه کوها. اینجا قبله کدوم طرف میشه؟ اون طرف، پشت ابرا. همونجا که درناها اومدن. سنگ صافی را که از ساحل آورده بود سمت قبله گذاشت. از آن داد و اقامه گفت و قامت بست. تصمیم گرفت نمازی خالص بخواند به هیچ چیز دیگری جز آنچه چه میگوید فکر نکند اما نتوانست اولن واجه دریاچه حواسش را پرت کردند بعد هم پیچ و به نیهای نیزار که گویا آنها هم مانند او به نمازی ایستاده بودند اما به جماعت صدای پرتنین و رازالوده هیس هیسی که از میانشان برمیخواست حواسش را پرت میکرد تصمیم گرفت به جایی جز پارسنگ روبرویش نگاه نکند همین کار را هم کرد اما وقتی خواست به سجده برود مورچهی خودش را از پاره سنگ بالا کشید و روی ماند. منتظر شد بلکه مورچه برود اما حیوان گیج زد و نمی‌دانست کدام طرف برود ناچار فوت محکمی کرد و مورچه را باد برد و بعد او پیشانی بر سنگ گذاشت در قنوطش هم ها و ها را توی آسمان دید و بعد هم چند حاجی لکلک لک را که از بالای دریاچه میگذشتند و با کنجکاوی به پایین نگاه می‌کردند نماز را تمام کرد روی دوکنده زانو ماند و با شمارش بند انگشتان دستش تصویح گفت. صدای آنا را شنید که داد میزد. چخه، چخه بر گمش و بیست مونده. برگشت و به پشت سرش نگاه کرد. کمرش تیر کشید. همان بود. با پوزه تیز و نگاهی خوفناک. چند ثانیه کرخ شد. نفهمید چه بکند. گرک حواظش به داد و فریاد آنا بود و داشت گوشهایش را تابت کرد. اسمایل پار سنگ زیر دستش را برداشت و به طرفش پرد کرد. سنگ تخت و پرام بود، بر یال باد نشست، به پر گوش گرگ سایید و رفت. آنا بلند شد و به دنبال سنگش تا پیدا کند و بیاندازد طرف گرگ. پشت سرش اسمایل کنده زانوهایش را از زمین کند. گرگ با اکراه چرخید و پشت به آنها آهسته دور شد. آنها گفت، اگه با چشم خودم نمی دیدم باور نمی کردم. اسمایل ایستاده بود و نگاه می کرد. گرگ خودش را به تپه ای رساند و از آن بالا رفت. شیبه تپه پر از بوته های گون بود که گل های ریز و اننابیشان شکوفه داده بود. باد موهای گرگ را به بازی گرفته بود. در کمرکش شیب تپه ایستاد و به آنها نگاه کرد. آنها به علامت برداشتن سنگی یا چیزی به زمین خم شد و با صدای بلند گفت. گمش و کافر چیزی گیرت نمیاد. گرگ که گویا حرف آنها را شنیده باشد سرش را بالا گرفت و خمیازه ای عمیقی کشید سپس برگشت و از میان بوته به سمت قله تپه حرکت کرد آنها همچنان بیقرار بود خدایا این دیگه چه بلایی بود سل نازل شده به این سن و سال که رسیدم تا حالا همچین جوونهری ندیدم اسماعیل گفت یه نفر تو مشکینشار گفت آمریکایی آوردن اینجا وا اگه راست میگم به جای گور گوسمن می آوردن می گفت آوردن که نسلشون رو زیاد کنن هنوز نسلشون زیاد نشده چند نفر خورده اگه زیاد بشه چی گرگ بالای تپه رسید و رو به دریاچه دراز کشید و به آنها نگاه کرد اسمایل با یک تکه کولش خشک دندانش را خلال کرد آنا گفت بریم دیگه اینم از گردشمون. اسماعیل خندید و گفت ناراحت نشو این هم یه جور گردش دیگه قربونت برم دیدن گرگ آدم آدمخوار کجاش گردشه بیخبر به چند قدمی تو اومده بود. خدا رحم کرد. زود بریم از اینجا. میبینی که هیچ کس نیست. راست میگفت. هیچ کس نبود. به غیر از آن گور که همچنان روی تپه دراز کشیده بود و نگاهشان میکرد و تعدادی درنا و غاز وحشی که سر و صدایشان از آن سوی دریاچه میآمد آنا صفرهش را جمع کرد. زد زیر بغلش و لباسش را از خوردریز نانها تکاند و راه افتاد. اسماعیل به دریاچه اشاره کرد و پرسید اینجا تا به حال آدم غرق شده؟ آره خیلی از بنافش در ریا یا دهات اطراف از همه جا بنفشه در ریا، دهات اطراف حتی از شهر اومدن اینجا غرق شدن. غرق میشن یا خودشونو غرق میکنن؟ هر دو. اسماعیل به دریاچه خیره شد و گفت جای به این قشنگی آنا بیان که به دریاچه نگاه کند گفت. تقصیر دریاچه نیست، تقصیر خود آدماست. بیشتر هم زنا عروسا چند روز بعد جنازهشون تو نیزار پیدا میشه فایده نداره دیگه حیونا گوشتشونو خوردن مصیبت اینجا کاش اصلا از اول این دریاچه نبود آه کشید و دوباره گفت نبود کاش از اول خدا میدونه چند تا چندتا روز چند تا دختر جوون دمبخت و زن شیرده ته این دریاچه تومه ماهیا شدن احتمالا اونایی رو هم که سیل از بالا آورده ریختن تو آره مادر سیلم اینجا میاره اسمایل برگشت و به پشت سرش نگاه کرد، گرگ ایستاده بود و نگاهشان میکرد، پرسید، راستی حالا چرا زنا؟ برای اینکه که بدبخترن، زیر دستن، کجا رو دارن برن، به کجا شکایت کنن، اصلا کی حرف اونا رو گوش میکنن، همین از دستشون میاد که بیان اینجا و خودشون رو قرق کنن، هر دو ساکت شدند، باد شمال کاکل نیها را به هم میسایید و صدای پرتنین و رازالود نیزار در فضا میپیچید